سحیفه معرفت شرح دعای هفته هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه هفته اسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المعسومین لاسی ما بقیت الله فل العرزین همونگونه که مستهزرید دعای هیبده همه صحیفه سجادیه را با هم پی می گیریم. نکات بسیار دقیقی را امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و مناجات با خدا به ما آموزش می در این رابطه که قلب ما، نفس ما، حقیقت وجود ما که روح متعلقه به بدن است که نفس نامیده می شود می تواند حالاتی پیدا کند که بر مبنای اون حالتها رفتار و کردار ما تغییر و تفاوتهای بسیاری پیدا می کند. از جمله عواملی که نفس را آلوده می کند دل را تیره و تاریک می سازد و روحیه انسان را روحیه گنهکاری و خطاکاری و بزهکاری می نفوذ شیطان در قلب انسان و کارهایی که شیطان بعد از نفوذ در قلب ما انجام می دهد امام السلام در این فرازی که این چند جلسه اخیر با هم بحث کردیم در ادامه صحبتها ابتدا از خدا درخواست می که خدایا نگذار شیطان راه نفوز به خانه دل من پیدا کند که این بحثش گذشت دوم اگر شیطان به خانه دل من راه پیدا کرد کمکم کن تا شیطان در اینجا توقف نکند وطن نسازد خانه دل مرا من منزل مناسبی برای سکونت دائمی خودش برنگزیند که این هم بحثش گذشت در ادامه فرمودن اگر شیطان وارد خانه دل شد این نکته رو توجه داشته باشید شروع میکنه به تصویل با سین یعنی آراستن باطل کارهای خلاف را امور ناپسند را با تزیین کردن و آراستن به گونه ای در نظر انسان ها جلوه میدهد که صاحب اون قلبی که شیطان در او وارد شده و به تصویل مشغول کشته امر را بر او مشتبه می کند و لذا باطل رو می سراغ بدی ها می برای معالجه این عمل نابسامان شیطانی از خداوند درخواست کرد خدایا فعرفناهو پس معرفتشو به ما بده به ما بشناسان که ما بفهمیم اینا تصویلات شیطانیست حالا اگر معرفت پیدا کردیم چه بشه؟ و ازا عرفتناهو فقناهو چون ما رو آگاه کردی و معرفت دادی و ما این شناخت رو پیدا کردیم توفیقی در ما ایجاد کن که بتوانیم در مقابل این شیطنت ها بیستیم ما رو باز بدار در ادامش به این عبارت رسیدیم و به ما نكاعده بهی و الهمنا ما نعده له این دو فرازرو دقت بفرمایید و بسرنا ما نكاعده بهی بصرنا به یعنی دانا کردن آگاه کردن بصارت دادن و روشنی نسبت به یک امری کید هیله و است که گران و مکاران به کار میبرن اینجا دو کلمه بسارت و کید را کیدی که شیطان میکند بسارتی که ما پیدا کنیم نسبت به اون کیدهایی که شیطان میکنه در مقابلش عمل به مثل انجام بدیم لذا عبارت ترجمه این میشه و بسرنا ما نکا به ما را به راهای کید و مکر و فریب دادن شیطان دانا گردان یعنی چی؟ یعنی تا الان دیدیم که شیطان کارش تصویل نفس بود تصویل نفس کید و مکر هست یا نه؟ بله داره مکاری میکنه داره کلک میزنه حالا که در دل من را پیدا کرده میخواد با این کید و مکر چه کید و مکری؟ تصویله. تصویل میشه مکر شیطان تصویل یعنی چی؟ یعنی باطل را لباس حق پوشندن اصولا کسانی که در طول تاریخ کار شیطانی میکنن میخوان انسان ها رو از حق باز بدارن آیا در لباس باطل آمدن یا در لباس حق از صدر اسلام نگاه کنید ابتدایی که پیغمبر اسلام به بهصد مبعوث شدن ابو سفیان و خاندانش به عنوان دشمنان سرسخت پیغمبر در مقابل پیغمبر ایستادند اگر اونها و دار و دستشون جنگ بد را انداختن جنگ اهد را انداختند جنگ احزاب را انداختن اما نتوانستن پیغمبر و یارانشون را از در بیارن به نتیجه نرسیدند برای اینکه به اهداف سوء خودشون برسند به کار تسویل و شیطنت و مکر و هیله پرداختند یعنی از لباس کفر در آمدن، لباس نفاق رو پوشیدند بعد از اون که اسلام قدرتش رو آشکار کرد مکه فتح شد اونها ظاهرا اسلام آوردند این بار در قالب مسلمان خودشون رو جا زدند ولی شواهد بسیار تاریخ گواهی میدهد که اینها اعتقادی به اسلام نداشتند ولی میخواستند تسویل نفس کنند همون کاری که شیطان میکند با این زمین مردم رو بفریبند یک نمونهش که تواریخ معتبر صدر اسلام همه نقل کردهاند. بعد از اون که عثمان روی کار آمد که از خاندان بنی امیه بود ابو پیر پیرمردی بود که دیگه چشماش خوب نمیدید اسا زنان خودش رو به خانه عثمان رسند عده‌ای هم گرد او بودن چون چشمش خوب نمیدید اما رئاصر رو نشناخت و متوجه نشد خیال کرد جم خالی از اقیار است گفت بنی امیه خلافت و حکومت به دست شما افتاد سفت بچسبید مثل گوی به یکدیگر پاس بدید نه خدایی هست و نه قیامتی همه بر سر قدرت است همون گونه که نوه او یزید هم وقتی که سر بریده ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو به شام آوردن ناخداگا ماف زمیر خود را آشکار کرد و گفت لعبد هاشم و ملکه فلا خبران جا اولا وحی و نزل بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردن خبری نازل نشده وحی نیومده اینا چیه همه بر سر حکومت و قدرت خب پس اونها سن وحی و قبول نداشتن پس چرا در قالب خلافت در قالب مسلمان در قالب مدافع اسلام آمدن تا اونجا؟ که با امام حسین درمیافتند به عنوانی که امام حسین از اسلام خارج شده این کلک است این هیله است این مکر شیطانی است که می‌خواهد انسان ها را از راه بدر کند امام سجاد علیه السلام داره به ما توجه میده بدانید که شیطان نفس تسویل نفس میکنه خب حالا در مقابل تصویل نفس شیطان در مقابل این کلک زدن و باطل را حق جلوه دادن شیطان ما با چیکار کنیم میگه خدایا بسرنا بس ما نکا ادوهو به خدایا منو آگاه کردن دانام کن کمکم کن عواملی سر راهم قرار بده که به من بفهمونند که منم در مقابل مکر شیطان مکر بکنم و, و نسبت به هیله او منم هیله و چاره ای بی بیاندیشم وقتی سر کار ما با کسی است که دارن از راه مکر و هیله با ما وارد میشن نه اینکه ما دروغ بگیم شیطنت کنیم نه جواب شیطنت اونها رو بدیم که فریب نخوریم اجازه بدید یه مثال ارج کنم فرض کنید بنده در یک اتاقی خوابیدهام. دزد خطرناکی که قاتل هم میتواند باشد وارد این اتاق شده و میخواد اموال مرا بگیرد و چه بسا احساس میکنم علاوه بر گرفتن اموال به جهت اینکه حالا گیر نیفته و مشکلی براش پیش نیاد تصمیم داره حتی مرا هم بکشه من اینجا یک زمان اصلا اینا رو نمیفهمم نمیدانم شیطان است شیطنت میکند دزد است میخواد خب وقتی اصلا معرفت نداشته باشم خب در مقابلش اکسالعمل ندارم فرازهای قبلی این درس رو به من داد که معرفت پیدا کنم در مقابلش بیستم حالا در ادامه اون دو بحث گذشته هم معرفت پیدا کردم به کمک انایت حضرت حق هم قدرت ایستادگی رو در خودم ایجاد کردم حالا این قدرت استادگی رو چجوری عمل کنم چون او گری می کند منم جواب حیله شو بدم مثلا بیام اینجوری کار کنم به دوز بگم که باشه شما حالا که میخوای اموال منو بگیری. من اموالم بهت میدم برای این که منو نکشی بیا بریم توی اون اتاق یه سری پول و امکانات تو اون اتاق دارم اونارم بهت بدم. حالا فرض کنید در اون اتاق چهار نفر خوابیدم. که ورود ما تو اون اتاق باعث میشه چهار نفر بیدارشن به کمک من بیان پین نفری بتونیم دوز رو بیرون کنیم. خب اینجا من این زرنگی رو باید بکنم یا نه جواب هیله این هیلهگر رو منم با هیله بدم. حواسم و جمع کنم خودمو نبازم او رو بکشونم ببرم تو اون اتاق با بیدار شدن کمک ها بر دشمن غلبه کنم شیطان میخواد تصمیل نفس کنه کیت بزنه خدایا از تو میخوام و بسرنا ما نکائدهو به بسرنا به منو بینا گردان منو دانا گردان منو آشنا کن ما نکائدهو با اون چیزایی که منم با او کید کنم منم در مقابل کیدش واسم مثلا فرض کنید ش... همون جوری که مثال زدم دزد میخواهد مال مرا ببرد یا مرا بکشد میکشانمش تو اون اتاق که کمک بیاد او رو دفع کنه شیطان می‌خواد منو بکشونه به طرف شهوت به طرف پول به طرف مقام به طرف دنیا به طرف دوستان ناباب منم به او کلک بزنم بگم من سراغ دوستان خوب میرم من سراغ مبارزه با شهوت میرم روزه بیشتر میگیرم نماز بیشتر میخونم قرائت قرآنم رو بیشتر میکنم مجالسی که یاد خدا رو در دل من زنده تر میکنه بیشتر انجام میدم این کیده با شیطان هست یا نه؟ کید چاره سا... چار گر... سازی و حیلگریه دیگه هیله یعنی چاره سازی چاره ای که در مقابل نقشه شیطان نقشه او را خونسا کند پس این بدین معنا نیست که خدایا تو فقط شیطان را دور کن گفتن زمان حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود فرعون و فرعونیان ظالمند و پیشه و ما وظیفه داریم در مقابلشون بیستیم فرعون... بنی اسرائیل گفتن یا موسی تو با خدای خود برو با فرعون بجنگ وقتی پیروز شدید ما میاییم این که راه تعالی نیست اما یاسر وقتی پیغمبر سخنت جنگ احد به میان آورد ارز کرد یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نیستیم بگیم تو با خدای خودت برو بجنگ و ما پیروز شدی میاییم ما میگیم هر چی تو بگیم میگیم چشم ما این درس رو هم ایم خدایا بسارت بده ما هم به شیطان کید بزنیم ما نکا ادوهو ما کید بزنیم ولی تایید از خدا باید بگیریم کمک از خدا بگیریم چون بی مدد الهی بی توکل بر حضرت حق است که نمیشه جلو رفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش حافظ حقیقتا زیبا مطلب رو در این شعر بیان می‌کند ما هنرمند باشیم توانو به کار ببریم ولی توکل به حضرت حق بکنیم مثل مثالی که در بحث گذشته زدم پامیشیم رو پامون وایسیم می میگیم شما هم هوای ما رو نگه دار اگه می‌خوایم بخوریم زبین زیر بغل ما رو بگیر که آسیب نبینیم در مقابل کید شیطان ما کید بزنیم کید شیطان اینه که ما رو تو دام بدا قرار بده ما رو تو جمع بدا ببره ما رو تو مجلس گناه ببره از این طرف هم خود خدا به ما راهنمایی کرده تو مجلس گناه نرید با بدان ننشینید در جمع نارواها قرار نگیرید تا حضرت حق انایتش رو شامل حال بیشتر کنه این میشه کلک شیطان رو جواب دادن من به او اینجوری کلک بزنیم من شاید این رو بارها گفته باشم خاطره ای در جوانی خودم دارم که برای خود من در این زمینه سازنده است در ابتدای نوجوانی هم یادم میاد بزرگان و اساتیدی که به ما درس میدادند تأکید میکردند نماز قفیله بخوانید خاصیت زیادی دارد انسان رو بیاد یاد خدا میندازه و روح عبادت رو تقویت میکنه گاهی من میدیدم بعد از نماز مغرب حال و نشاط لازم برای نماز قفیله رو در خودم احساس نمیکنم با خود خلوت کردم یک آیا من معتقد نیستم که نماز قفیل خوب است؟ به درون خودم که مراجعه کردم دیدم نم دو آیا از نظر جسمی انقدر خسته و ناتوانم که امکان درک نماز قفیل بین مغرب اشار ندارم؟ دیدم اینجوری نیست سه آیا زیغ وقت من برای انجام کاری که خیلی مهم است و ضرورتی ایجاب کرده اون باعث شده است که من این کار را نکنم دیدم اونم نیست ریشیابی کردم در درون خودم دیدم جز وسوسه شیطان هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه شیطان میخواد از این راه وارد بشه منو نسبت به این عملی که خدا دوست داره پیغمبر دوست داره امام سفارش کرده بزرگان گفتن اساتید ما برای تعلیم ما به یه دستور عمل لازم دانستن به ما گفتن پس شیطان داره یه جوری دیگه در نفسم جلوه میده من در مقابل شیطان چه کنم کلک و او رو باید کلک بزنم لذا اومدم با خودم به راهنمایی اساتید اینجوری عمل کردم نماز مغربم که تمام می‌شد رو به قبله می استادم با صدای بلند انگار روبروی من شیطان نشسته خطاب میکردم تجربه شخصی خودم رو میگم میگفتم شیطان به کوری چشم تو میخوای نماز و نخونم من عمدن الان نماز و رو رو میخونم طولشم میدم با آداب و دقتم میخونم تا تو معیوس بشی خب او میخواد کلک بزنه پس منم کلک بزنم منم در مقابل او بیستم کلک من به شیطان چیه؟ به عبادت بیشتر بپردازم به وظائف شخصی هم توجه بیشتری بکنم به عواملی که شیطان از اونها بیزاره سراغ اونها بیشتر برم پس این بیانی که امام علیه السلام میفرماید و بسرنا ما نکا به این عبارت در عبارت بعدی به نظر من یه توضیح اومده که بیشتر برای ما این رو روشن میکنه و الهمنا الهام کن به ما ما نو اون چرا که باید در برابر او ما فراهم آوریم. ما نوع ادو له ببینید الحمنا الهام به قلب انسان چیزی را تابوندن است لحم لام و هی دو چشم و میم بل ایدن و فرو بردن چیزی رو میگن الهمه او به قلبش افکند الهام گویی در دلش افکنده شد مثل این که اینو در درونش بلعید خب ما وقتی یه مطلبی رو میخواییم فرا بگیریم یه وقت از طریق گوشمونه یه وقت از طریق چشممونه یعنی از طریق حواستمون یه وقت از طریق عقلمونه یه وقتم به دلمون مطلب خطور میکنه اونجایی که خداوند به دل میتابانه کلمه یه وحی رو که در قرآن به کار برده معنی الهامم از توش در میاد یه وحی است که خدا به انبیا میکنه اونو نمیگم اما وقتی در قرآن میگه و اوهینا اله ام موسا یعنی ما به دل مادر موسا انداختیم چنان مطمئن شد خاطر جمع اینی که به دلش خطور کرده حقه که بچه رو بنداز تو آب با اون شرایط این میشه نوعی الهام اونی که به دل خطور کردن خداوند این قدرت رو به انسان ها داده و نفس و ما سواها فالهمه ها فجورها و تقواها یعنی این نفس به گونه است که در داخل این نفس الهام شده انداخته شده این قرار داده شده که جنبه فجوری و جنبه تقواییش خب پس الهام به دل ما خطور کردن به دل ما قرار دادن فهم مطلب رو به انایت حضرت حق بیشتر پیدا کردن چون ببینید ما حتی با عقل کار میکنیم الهام رو درونواد ندیده بگیریم یعنی شما یک زمانی هست شرایط روحیتون مساعد نیست یه مطلب عقلی بسیار زیبایی رو دارید روش تعقل میکنید ولی چیزی به ذهنتون خطور نمیکنه یه وقتی شرایط روحیتون مساعده همین مطلب رو که مطالعه میکنی صد تا مطلب از او درمیاد اینها الهامه الهام به عقل، الهام به دل، الهام به دنیای معرفتی ما که مطلب رو دریابیم، همونطوری که گاهی در مقابل چشم ما ممکن مطلبی قابل دیدن باشه، ولی به جهت عدم تمرکز نبینیم اما انایت شامل بشه چشم ما به اون نقطه دوخته بشه مطلب رو عجب. من بارها اینجا نگاه کرده بودم و این عبارت رو نمیدیدم این کتاب رو نمیدیدم این جمله رو متوجه نمیشدم اینا الهامات الهیست و انایت حضرت حق که انشالله باید بحث مفصلی در موردش بیاری خدا داشته باشیم ولی بحثی که اینجا در ادامه این فراز از دعا دارم و الهمنا ما اده و عده شرایط امکانات اده عده مثلا من میخوام برم جنگ خواهی اده احتیاج دارم من یه نفری که نمیتونم در مقابل یک لشکر بیستم اده میخوام بیست تا سی تا پنجا تا صد تا هزار تا ده هزار تا باید با خودم ببرم عده حالا این اده ای که با من است چه وسائلی احتیاج دارم توفنگ میخوان؟ اسلحه میخوان؟ شمشیر میخوان مرکب سواری میخوان تو دنیای امروز بم میخوان مثلا خب و وعید دوله هم مستطعتم من قوه که قرآن کریم بیان میکنه یعنی به اندازه استطاعت و توانتون امکاناتو فراهم کنید خب من چه عده ای در مقابل ابلیس لازم دارم چون من به جنگ ابلیس باید برم ابلیس تصمیل نفسو شروع کرده در مقابل من استاده دامن همتشو به کمر زده همه اوامل هم فراهم کرده که منو از راه بدر کنه حالا من میخوام با او در بیفتم اول از خدا میخوام که خدایا این کمک به من بکن و بسرنا ما نکائدهو به منو آگاه کن چجوری کید کنم چجوری به شیطان کلک بزنم که نتونه بر من قلبه کنه و الهمنا ما نو اددهو له الهام کن من چه چی چیزایی فراهم کنم خب الهام خداوند برای فراهم کردن چیه؟ عواملی که ما رو از شیطان باز می‌داره و دور میکنه چیه؟ یاد خدا و من یعشن ذکر رحمان لغیز لهو شیطانا خود خدا گفته اگه از یاد خدا غافل شدید اگه یاد خدا رو فراموش کردید اگه متوجه خدا نشدید شیطان مسلط میشه اگه با گنهکاران نشستید پس عدهی که فراهم می‌کنیم. یاد خداست حالا ادامه اتفاقا در بیان حضرت هم اومده اما اینجا کلیشه اون امکاناتی که من باید فراهم کنم در مقابل شیطان بیستم خدایا الهام کن خب الهام الهی یکی وحی است که به انبیا فرستاده خب پیغمبرها گفتن برو از الهام انبیا بگیر یکی است که به امامان شده خب برو از امامان بگیر گاهی هم خطور میکنه به قلب خود ما افاظه میشه انایتی میشه الان این کار رو بکنی بهتره ولی این نکتر باید توجه کنیم اگر الهامی بگیم خطور قلبی ما الهامی شده است با اونچه که در الهام سطح بالاتر که وحی و الهام امامانه است به من الهامی صورت گرفته با اونی که به پیغمبر وحی شده یا به امام الهام شده مغایره مسلما الهام من نیست الهام الهی نیست اگر مثلا در ذهن من خطور کنه برای اینکه که با شیطان در بیفتی برو تو جمع گناهکاران با اینا بشین هم سفره بشو هم غذا بشو هم فکر بشو بعدا میتونی چنین خب ببینیم دینم هم چه ای به ما داده؟ خو خب مگه خدا به پیغمبر وحی نفرستاده به بندگان من بگو مثلا این عمل این امن این عمل زشت فجتنه بو اما شما که اینجا میگی به من الهام شده برم با اینا بشینم پس اینا شیطانیه الهامی که با الهام انبیا با الهام اولیا با حقایق مسلم عقلی تطابق دارد اینا رو باید پذیرفت پذیرفتن این مطالب باعث می شود ما عده ای که لازم داریم در مقابل شیطان برای خودمون فراهم آوریم و این عده قوی همونایی است که خداوند به عنوان دستورات عبادی به ما داده لذا انسان باید دستورات عبادیشو با عشق و علاقه بیشتر به عنوان داروی دردش نگاه کنه بچاست که از دارو فرا فرار میکنه چون نمیفهمه اما یه انسان عاقل اگر داروش گیرم نمیاد این در اون در میزنه به قیمت گرونتری بخره چون معالجهش رو در این میبینه عده ای که خدا قرار داده من با شیطان در بیفتم همین نمازه همین روزه است، همین قرآن خوندنه همین مناجات شبه همین نشستنه در مجالس علم و اهل درد و درد مندانه اینا رو باید غنیمت شمرد به قول حافظ سینه مالا مال درد است ای دریغا مرحمی جنز تنهایی به درد آمد خدایا هم به تنگ آمد خدایا همدمی همدم ما است که خدا برای ما قرار داده اگه اینا رو استفاده کردیم این دو فراز صحیفه سجادیه در دعای عیده و بسرنا ما نکائده به ما را آگاه و بینا گردان چجوری ما به شیطان کلک بزنیم و علحمنا ما نوعد دهوله الهام کن به ما چه چی چیزایی رو فراهم کنیم که به کمک اون عده ای که فراهم می کنیم بتونیم سینه سپر کنیم و در مقابل ابلیس بیستیم که خداوند توفیقش را به همه ما مرحمت دارد الله و سلام علیه